اصل هفت، گلدان های حیات ساعت از برنامه روزانه ما به مطالعه جمعی اختصاص داشت اما بحث هایی که در می گرفت حتی وقت نهار و شام ما را به خود مشغول می کرد خواندن کتاب لنین برایمان کافی نبود کتاب مسعود احمدزاده را هم وارد فهرست مطالعاتی خود کردیم می خواستیم متونی هم درباره وضعیت اقتصادی اجتماعی ایران بخوانیم پس کتاب رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی نوشته رفیق مومنی را که با نام مستعار بیت سرخی به چاپ رسیده بود در دستور بحث گذاشتی. رفیق علی گفت: صفحه های اقتصادی روزنامه را رو از امشب می‌خونیم و دربارش صحبت می‌کنی. علی همیشه صفحات اقتصادی را میخواند اما اگر تصمیم با من بود این صفحه را نگاه هم نمی‌کردم. هر شب که روزنامه را تقسیم می‌کردیم، من اول ستون حوادث را می‌خواندم. نمیدانستم چگونه صفحه اقتصادی را به و و مطالبان را بفهمم علی این سؤال را که مبارزه مسلحانه چگونه می تواند توده ها را به خود جلب کند طرح کرده بود و از ما خواسته بود تا برای پیدا کردن جواب به کتاب احمدزاده رجوع کنیم. ما میان توده ها رفتیم. وقتی آنها را به مبارزه دعوت می کردیم آنها به ما اعتماد نداشتند توده ها شکست جنبش و خیانت رهبران را دیده بودند. مسعود در کتاب خود به تجربه شکست خورده کار تودهی و سیاسی در بین مردم اشاره کرده مسعود در کتاب خود به تجربه شکست خورده کار توده‌ای و سیاسی در بین مردم اشاره کرده و بر صداقت انقلابی برای جلب توده ها تاکید کرد. از ذهنم گذشت صداقت آیا این همان دلیل اصلی نیست که من را به این راه کشانده است نیما گفت از سال دو به بعد تمام سازمان های سیاسی سرکوب شدند رژیم حتی تحمل جبهه ملی رو که همش شرفای بیبو خاصیت میزد نداشت برای مبارزین تنها یک راه باقی مونده بود به قول رژیم دبره زمانی که جرم پخش اعلامیه و دست بردن به اسلحه یکی باشه مردم گزینه دوم رو انتخاب میکنه. نیما کتاب مسعود را باز کرده بلند خواند اثری از, از جنبش تودهای یا اعتصابات کارگری نمی‌بینم و همه اینها از شرایط سخت پلیسی است ارتباطی میان روشنفکران و توده نیست توده ها به روشنفکران بیاعتمادند. از ذهنم گذشت پس این رابطه چطور می‌تواند برقرار شود یک سال از مخفی شدنم می‌گذشت در این مدت در فقیران ترین محلات شهر زندگی کرده بودم تابستان گذشته در کارخانه ای کار کردم بعد از کار در کارخانه میماندم و با کارگران زن صحبت می کردم با پیرزنی دوست شده بودم که دخترش شوهر کرده و در همان خیابانی زندگی می کرد که خانه مادری من نیز در آنجا بود پیرزن جمعه ها برای کمک به دخترش به خانه آنها می رفت و شنبه ها هر چه دیده بود و هر کاری را که کرده بود برایم تعریف می او از دنیای دیگری که در آن سوی شهر است دنیایی که در آن بچه ها میز تحریر و تخت خواب جداگانه دارند دنیایی که مردم در خانه هایشان حمام و ماشین رخت دارند حرف می بعد از هر چند جمله از خدا می تا برای من هم شوهری چون شوهر دخترش پیدا شود تا مرا از این دنیا به آن دنیا ببرد بارها فکر کرده بودم اگر او میفهمید که مسلح هستم برای نجات همسال او آن دنیای زیبا را ترک کردم تا بجنگم و آمادم تا کشته شوم چه واکنشی نشان خواهد داد دانشگاه فرق میکرد آنجا چریکها را می‌شناختند همان روزهای اول ورودم به دانشگاه بر دیوارهای راهرو شعار زنده فدایی را دیدم. بر دیوار دیگری آدرس رادیو زحمتکشان و ساعت پخش برنامه ها نوشته شده بود. یک بار جزوی از فدایان را زیر یک از پله‌ها یافتم. کسی بر آن نوشته بود: بخوان و دوباره اینجا بگذار. برخی روزها عکس گل سرخ به یاد خسرو گل سرخی بر تخته کلاس نقاشی میشد. کنار راهپله روی دیوار شعری آمده بود آنکه میگفت حرکت مرد در این وادی خاموش و سیاه برود شرم کند های سیاسی همه جا جریان داشت در تریا اتاق کوه راه روها جنگ پارتیزانی ویتکونگ ها در برابر حملات سربازان آمریکایی مقاومت فلسطینیها در برابر حجوم کماندوهای اسرائیلی شجاعت لیلا خالد در هواپی ماروبایی؟ آرزو میکردم مانند لیلا خالد شجاع و توانا باشم. آرزو میکردم که ما هم بتوانیم چون ویدکونگ ها و فلسطینی ها هماسه بیافرینیم. وقتی به دانشگاه پانهادم هشت تن از نهچریکی که اکس های آنها را ساواک پخش کرده بود و برای سرشان جایزه گذاشته بود، کشته شده بودند. حمید اشرف تنها بازمانده آن جمع برای ما چگوارای ایران بود. قهرمانی های او دهان به دهان بازگو می شد. سال بالای ها هنوز آن روزها را فراموش نکرده بودند. عکس نهچری که فراری روی دیوارای دانشگاه به جای وحشت تحسین برمی انگیخ. حقلب چریک ها دانشجو بودند. دانشگاه مرکز تولید فدایی بود. در نگاه مردم چریک دانشجوی درسخانی بود که به خاطر مردم دست از دانشگاه و زندگی میکشید. کشید. همه کسانی که می حتی آنهایی که مبارزه مسلحانه را قبول نداشتند فدایی ها را تعیید و تحصیل میکردند. حتی دانشجویان ایرانی خارج از کشور و کنفدراسیونی ها نیز از فدایی ها طرفداری و بعد از هر حرکت مسلحانه در اعلامیه‌ای حمایت خود را از آنها اعلام می‌کردند با صدای بلند گفتم دانشگاه با ماست همه فدایا رو میشناسند رفیق علی نگاهی به من انداخت و آرام سوال کرد آیا هدف مبارزه مسلحانه جلب دانشجوهاست سوال مانند پتکی سنگین بر باورهایم بود چرا ما نتوانستیم کارگران و زحمتکشان را جلب کنیم؟ با آمدن بهار و سبز شدن گلهای حیات یکی از سرگرمه های نیما رسیدن به گلدان ها بود. این کارا را های زود وقتی پاس صبحگاهی با او بود و دیر وقت شب وقتی برای خواب آماده می شدیم انجام میداد. داد. رفیق علی از این عادت او خوشش نمی آمد. گاه و بیگاه متلکی می انداخت رفقای گلدون در چه حالند توی برنامه وقت براشون بذار فکر نمیکردم که رسیدگی به گلها در محیط دوستانه تیم مسئله ساز باشد اما شبی بعد از شام زمانی که برنامه روز بعد را مینوشتیم علی بدون مقدمه گفت رفیق چرا انقدر به گلدون و علاقه نشون میدی؟ درست نیست توی این زندگی باید علاقت روی چیزای دیگه بذاری. اولین بار بود که در تیم موضوعی غیر از مسائل سیاسی و کتابخانی مطرح می شد. نیما واکنشی نشان نداد. خواستم او رو از زیر ضربه خارج کنم. گفتم گلدونای حیات و همسایه آورده. فکر می واسه توجیه خونه خوبه که حیات خوش و خالی نباشه. میدانستم که حرفم درست نیست. از همان روز ورودم به این خانه. حیات بدون گل و گیاه را سرد و لخت دیده بودم. حسم را به یکی از همسایه‌ها گفتم. او که بهانه‌ای پیدا کرده بود تا سرکی به خانه ما بکشد، و همراه پسرش چند گلدان برایم آورد و کنار حوز گذاشت. گلدانهایی بزرگ که در آن پیاز گل کاشته بود. پیازها با آمدن بهار سبز شده و به حیات رنگ زندگی داده بودند. رویدن هر روزه و جوانه های سبز کوچکشان حسی لذت پخش از زندگی، حرکت و تغییر را در اعماق وجودم جاری میکرد. خوشحال بودم که نیما هم با آنها علاقه نشان میدهد. فکر کردم با توضیح هم مشکل حل میشود اما علی با لحنی تحکمامیز میان حرفم پرید. رفیق این تذکر شامل تو هم میشه. خونه تیمی که جای این کارا نیست. این یکی گلدون میاره اون یکی آبش میده این یکی از بیرون با خودش گل میاره اون یکی میذارتش تو گلدون من که شما رو میشناسم اما یک کس دیگه ای بود چی میگفت؟ این کارها مال جوانای خورده برجوه نه مال چریک و خونه تیمی نیما که با شنیدن جمله آخر رفیق چشمهایش چار تا شده بود یک باره با صدای بلند چشم در چشم علی گفت رفیق نمیخواد از کاه کوه بسازی؟ از یه گل آوردن که دنیا زیر رو نمیشه. خوشت نمیاد؟ دیگه نمیارم. علی صدایش رو بالاتر برد. مسئله خوش نیومدن من نیست. اینجا جای این کارا نیست. کدوم کارا رفیق؟ تو چت شده. این گلدونا توجیه خونه است. اگه آبشون ندم خوش میشن. از بیرونم دیگه گل نمیارم. بهتر این بحث بحثو تموم کنی. خوش کم فکر نمی کردم. علی از آب دادن گلدان، کندن گل و گذاشتنش روی میز به برداشتی چنین برسد. چطوری اینا رو به هم ربط داد؟ علی دنبال حرفش را نگرفت. زبان من هم بند آمده بود. انتظار این برخورد را نداشتم. توضیح بیشتری هم نداشتم. هرچه می گفتم کار را خرابتر می کرد. هر دوی آنها برف روخته بودند. دلم می خواست زودتر بروم و بخوابم. خوشحال بودم که نگهبان اول نیستم و می توانم خود را زیر لحاف در تاریکی شب پنهان کنم و در افکارم گم شوم. نمی فهمیدم چرا گل آوردن های نیما برای علی انقدر اهمیت داشت. هر وقت با نیما برای کاری با موتور بیرون می رفتیم، سعی می کرد از کوچه تازهی بگذرد تا ما مادی دیگری را کشف کنیم. بهار شده بود و درختها ها کوفه. گلهای سفید و بنفش اققی های در هم تنیده از سر دیوارها آویخته و فضا را رویایی میکردند. وقتی که همراه نیما نبودم برایم تعریف میکرد که از کدام کوچه عبور کرده و چه منظره را دیده است؟ اگر در جای شکووف باز شده بود از آنها میچید و میآورد. میدانست که این مادی های پر آب و گل را چقدر دوست دارم؟ روزی با موتور بیرون بودیم، از خانه خیلی دور شدیم پرسیدم کجا میریم؟ یه مادی پیدا کردم حتما نمره بیست بهش میدی. در محله عباس آباد که تا آن روز نرفته بودم به کوچه پهن په پیچید که مادی آن حدود یک متر و نیم پهنا داشت آب تمیز و شفافی در بستر آن با آرامی حرکت میکرد در اطراف مادی های کوچک زرد و بنفش و سفید رویده بودند. خانه های کوچه را دیوارهایی پنهان می کردند که خود با گل های تا زمین آویزان عقاقیا پوشیده شده بودند کف زمین پوشید از گل رنگین بود وقتی با موتور به ابتدای کوچه رسیدیم احساس کردم که بر ابرها قدم نهادم. نور آفتاب بعد از ظهر از کناره به دیوارها میتابید در کوچه پرنده پر نمیزد فراموش کرده بودم کجا هستم حرکت موتور راهس نمیکردم این همه زیبایی یک جا نیما موتور را با آرامی به کنار دیواری راند و خاموش کرد جهان از حرکت بازی استاد در اثر رنگ غاقیا غرق شدم نیما دسته ای از گلها را چید و به من داد. دامن چادر سفیدم از گلبرگ های رنگین پر شد. صورت را در میان آنها فرو بردم. سینم از عطر پر شد. نفهمیدم چه مدت آنجا ساده ایم. دلم میخواست زمان متوقف شود. نیما درست گفته بود. نمره بیست متعلق به آن مادی بود. حالا زیر الله دراز کشیده و های علی فکر می کردم. این کارها مال جوانان خورده برژو آیا همه اینها معنی خاصی می آیا احساسی میان من و نیما بود؟ میدانستم که نیما بی کلام و سخنی و گاه حتی زودتر از خودم حس و هوای روحی مرا در میافت. هر جا لازم بود از من حمایت کرده و پشتم میستاد. من هم میتوانستم نگرانی هایم را راحت به او بگویم و نگران قضاوتش نشوم. مادر پدرم همیشه مرا از اعتماد کردن به مردم میترساند. میگفت هر کسی دنبال سود خودشه. اما نیما به سرعت اعتماد مرا جلب کرده بود. آیا این؟ علامت علاقه ای میان ما بود؟ شاید علی درست حد زده بود و کارهایی که نیما میکرد معنی دیگری داشت معنی که من نفهمیده بودم ترس به دلم افتاد می که علاقه میان دختر و پسر در سازمان مجاز نیست آیا چون او یک پسر بود نمی توانست دوستم هم باشد؟ خوابم نمی برد از این پهلو به آن پهلو می زدم. از این همه محدودیت احساس خفگی می کردم. نمی نمیفهمیدم کدام کار غلط بوده است تا آن را تصحیح کنم تا قبل از آن شب در رفتارم تفاوتی بین نیما و علی نمی گذاشتم اگر چای برای خودم میریختم برای آنها هم میریختم. اگر می دانستم نیما حتما چای میخورد دیگر نمی پرسیدم. اگر از بیرون می آمدم و داستان بامزه‌ی همسایه‌ها شنیده بودم برای هر دو نقل میکردم، و اگر علی در حال مطالعه بود برای نیما میگفتم نیما همیشه علاقه بیشتری نشان میداد از همسایه ها میپرسید اینکه کدام همسایه چند تا بچه دارد شوهرش کیست کجا کار میکند علی گفته بود که محیط تیم ما خوب است و میترسد با این کارها خراب شود کدام کارها چرا علی که روشن فکر و دانشگاه رفته بود با این نگاه به رابطه من و نیما مینگریست تا آن زمان برای علی ارزش بسیاری قائل بودم و خیلی چیزها از او یاد گرفته بودم. اما او با حرفهای آن شبش در عرض چند دقیقه در ذهن من به فردی سنتی بدل شد. به رغم دانشش به دنیای دیگری تعلق داشت که با آن بیگانه بودم. صبح روز بعد وقتی نیما مرا بیدار کرد هوا روشن شده و از زمان نگهبانیم گذشته بود. قبل از اینکه سوالی کنم خودش گفت دیدم دیشب بد خوابیدی برا نگوانی نکردم. نمی نمیدانستم چه بگویم او باز هم حال مرا فهمیده بود سرم را پایین انداختم گفت حرف‌های علی رو به دل نگیر زمان ورزش صبحگاهی دلم نمی‌خواست که نگاهم با نگاه علی تلاقی کند می‌ترسیدم که بفهمد چه حسی به او پیدا کردهم. بعد از صبحانه وقتی مطالعه فردی داشتم نمیتوانستم حواسم را جمع کنم. فضای خانه برایم تنگ شده بود. بهانه هم برای بیرون رفتن نداشتم. عقدس خانومم ما به کمکم آمد. کم کم داشتم به این همسایه علاقه من می شدم تا در خانه را باز کردم نگاهی انداخت و با همان لحجه شیرین گفت چی نیشستی تنا؟ وقتی پاشو بیا پیش ما؟ داریم برای دخترم لاف عروسی میدوزیم. دخترم گفتست که نظر شومهارم بپرسیم. پاشو پاشو. اگر وقت دیگری بود بحانه می آوردم و نمیرفتم. اما حالا دلم میخواست از این خانه دور شوم. از در خانه همسایه وارد حیات و بعد از بالا رفتن چند پله وارد ساختمان شدیم. پنبزن در حیات مشغول بود. از راهروی باریکی گذشته و به اتاق بزرگی وارد شدیم. که آفتاب خود را بر سطح آن پهن کرده بود همسایه های دیگر قبل از من آمده بودند به من همسایه تهرانی با احترام نگاه میکردند. بحث رنگ رویه لحاف به طور جدی درگیر بود رنگی لحاف دختری من سورتی است آبجی؟ تو سه سال پیش عروسی کرده است حالا دیگه این رنگ از مود افتاده است اما میگه رنگ آبی مود شده از خانوم در حالی که چای را جلوی همه میگرفت گفت حالا چی فرقی میکنه رو لافی چه رنگی باشه؟ از قدیم میگن زیرش مهمست نروش همه با صدای بلند خندیدند چندین قبار پارچه آورده بودند که از میان آنها انتخاب کنند دختر همسایه پرسید تو تیرون کدوم رنگ موده؟ حواسم آنجا نبود. پرسیدم چی؟ لاحافی عروسی شما چه رنگی بوده؟ لاحاف عروسی من؟ در دل لبخندی زدم. یاد آخرین لباس عیدی افتادم که مامان برایم دوخته بود و گفتم بنفش پررنگ. دختر از میان قواره های پارچه یکی را که ساتن بنفش بود بیرون کشید و وسط اتاق پهن کرد. همه تعیید کردند که برای روی خیلی زیباست. بحث روی لحاف تمام شد. بعد هم چای و شیرینی و صحبت که شرکت در آنها نیاز به فکر کردن نداشت. به خصوص برای من لازم بود تا دوباره به فضای آرام بخش گذشته بازگردم. اما از آن شب در تیم ما یک چیزی تغییر کرد. حس می کردم حرکاتم زیر زهربین است. کارهای معمولی هم برایم مشکل شده بود به نیما نزدیک نمیشدم درباره کمترین رابطه با او محاسبه میکردم نیما اما مرا به صحبت رو در رو می گرفت از کوچ های پرگولی که دیده بود تعریف و درباره دستپختم شوخی می کرد علی نیز از غذایم تعریف می کرد حس میکردم سعی دارد تا تلخی حرفهای گفته شده را از دلم درآورد. اما برای من ظرفی شکسته شده بود و آبی ریخته نگاه کن چه فروتنان برخاک می گسترد آنکه نهال نازک دستانش از عشق خداست و پیش اسیانش بالای جنب پسته آن کوچه‌ی یکی آری می‌میرد نبزخم زد خنجر و مرگش در نمی‌رسد مگر آن که استقبال دقت کن، از این که تلس مدر بازش کلام کوچک دوستی. این کار عشق را که به سرسختی پاسفت کرده ای, ای مگر به آستین اندر نهان کرده باشی که عاشق اعتراف را چنان به فریاد آمد که وجودش همه بان که پروتنانه بر درگاه نجابت به خاک می شکند ای که توفانش مزخ نیارست کرد که پروتنانه بر آستانه تو به خاک می افتد آن که در کمرگاه دریا دست حلق تبانست است نگاه کن چه بزرگ باران در پای تو سر نهاد آنکه مرگش میلاد هر حیاها هزار شخص داد. نگاه